آن مرد نییم که از عدمم بیماید، آن بیم مرا خوشتر از این بیماید، جا مرا به آریه داده خدا تسلیم کنم چه وقت تسلیم آید. اجرام که ساکنان این ایوانند، اسباب تردد خرد مندانند، آن تا سر رشته خرد گم نکنی، کانان که مدبرند سرگردانند. آنها که فلک ریزه ده را راویند آیند و روند و باز با ده رایند در دامن آسمان و در جیب زمین است که تا خدا نمیرد زایند. آنها که اسیر عقل و تمییز شدند در حسرت هست و نیست ناچیز شدند رو با خبران آب انگور گزین کین میخبران به غوره مویز شدند.